دوستی خیرس روزی بود و روزگاری بود در زمان قدیم یک پیرمرد مرد دهغان بود که تمام عمر خود را در کار کشاورزی و باغبانی گذرانده بود و کم کم باغ بزرگی در خارج شهر خریده بود و در آن درختان میوهدار بسیاری فراهم آورده بود. میوههایی که در آن باغ به عمل میآمد مانند انار ساوه، انگور شهریار، سیب تربت، هلوی مشهد، پرتقال شهرسار،خرربه هندوانه شریف آباد گوجه برقان و گلابی نتنز و سایر میوه‌هایی که امروز به خوبی معروف است در نزد اهالی شهر نزدیک معروف بود و همه حسرت داشتن چنین باغی را میخوردند اما این پیرمرد دهقان هیچ کس را نداشت در کودکی پدر و مادرش را از دست داده بود و از اول جوانی به قصد کار کردن به ولایت غربت سفر کرده بود در آن محلی هم که زندگی می کرد قوم و خیشی نداشت و چون در جوانی توحیده است بود کسی با او دوست نشده بود او هم بعد از اینکه با زحمت و کار و کوشش صاحب باقی با آن خوبی شده بود اظهار دوستی دیگران را به چیزی نمی خرید. و این بود که یار و یاور مانده بود و تنها در باغ خود زندگی می کرد. این بود تا یک روز که پیرمرد دهقان از تنهایی حوصله‌اش سر رفت و احساس وحشت کرد و با خود گفت قدری هم بروم بیرون گردش کنم شاید همزبانی پیدا کنم و دلم باز شود از باغ بیرون آمد و چون گردش در کوه را خوش داشت قدم زنان به طرف کوهساری که در آن نزدیکی بود روان شد از غذا در آن کوه یک خرس پشمالوی پیر زندگی می کرد که چون در آنجا حیوانات دیگری نبودند او هم از تنهایی دلتنگ شده بود و به طرف صحرا پایین می آمد. تا در بیابان شاید جانوری بیابد و قدری درد دل کند و پیرمرد دهقان و خرس پیر میان راه به هم برخوردند پیر مرد وقتی خرس را دید که آهسته آهسته راه میرود و غمگین به نظر بین به او گفت حیوان زبان بسته چرا تنها گردش می کنی؟ خرس جواب داد درد من همین است که تنها هستم بچه ها دنبال بازی میروند جوانها پرشور و پرکار هستند و ما که دیگر پیر شده ایم کسی با ما راه نمیرود و چون خیلی افسرده بودم گفتم قدری در صحرا بگردم شاید. دلم باز شود باغبان گفت آها خوب میفهمم که چه میگویی من هم از تنهایی توی باغ دلم گرفته بود کار دنیا همینطور است هرقدر کسی از مردم بینیاز باشد و به کسی محتاج نباشد باز تنها نمیتواند خوشبخت شود خرس از حرف‌های باغبان باقبان خوشحال شد و جواب داد پس معلوم می شود ما هر دو هم همدردیم، هر دو بیکس هستیم، هر دو پیر هستیم و هر دو دل دلمان از تنهایی گرفته و خوب است که با هم دوست باشیم و گاهی یکدیگر را ببینیم و قدری با هم صحبت کنیم پیر مرد دهقان گفت من حاضرم، دوستی تو را می پذیرم. و چون یک باغ بزرگ پر از میوه دارم اصلا ممکن است به باغ من برویم و همیشه در باغ باشیم بعد از این با هم عهد دوستی بستند و وارد باغ شدند خرس که خوراک و جای راحت و رفیق خوب پیدا کرده بود خوشحال بود و به قدری محبت پیرمرد دهقان در دلش جایی گرفته بود که میخواست جان خود را فدای او کند او در هر کاری که میتوانست به پیرمرد دهقان کمک میکرد و هر وقت کاری نداشتند سرگزشت خود را حکایت میکردند. بعد از ظهرها هم باقبان زیر درختی خوابید و خرس که خیلی به دهقان محبت داشت دستمالی به دست میگرفت و برای راندن مگس از روی صورت دهقان او را باد میزد. چند روز گذشت و در یکی از روزها که دهقان خوابیده بود و خرس با وفا به مگس پرانی مشغول بود مگسها بیشتر حجوم آورده بودند و یکی دوتا مگس لجباز هم بودند که از کنار لب و دهان پیرمرد دهقان دور نمی پیرمرد در خواب ناراحت بود و با تکان دادن سر خود مگسها را دور می کرد. ولی باز مگسها ها ولکن نبودند. کم کم خرس از دست مگزها خیلی خشمین شد که چرا دوست عزیزش را از خواب بیدار میکنند و هرقدر هم دستمال را تکان میداد نمیتیدند.عااقت خرس فکری کرد و با خود گفت: عجب مگز لجباز باز و مردم هستند الان بلایی به سرتان بیاورم که دیگر ارباب عزیز و دوست مهربان مرا اذیت نکنید. آن وقت سنگ بزرگی را که ده من وزنش بود از کنار باغچه برداشت و سر دست بلند کرد و مگزها را که روی صورت پیرمرد نشسته بودند نشانه گرفت و سنگ را محکم روی مگزها زد. البته مگزها پرواز کردند. ولی پیرمرد جان خود را در راه دوستی با خرس از دست داد. البته خرس میخواست به پیرمرد خدمت کند. ولی از روی نادانی به قصد خوبی کردن دوست خود را حلاک کرد از آن روز درباره دوستی با دوستان نادان این مثل معروف شده که میگویند دوستی فلان کس مثل دوستی خرس است.